بسم الله الرحمن الرحیم بنا می خوداوند بخشنده مهربان و الملثات عذ سبحان با فرشتگانی که پی در پی براستا می شوند فلعاصفات عصف با آنها کم کم تون حرکت می کنند و با سبحان با آنها که می و منتشر می ساسند و آنها که جدا می کنند و سبگند و آنها که آجات بیدار کنند را و انبیاء القامی نماکند برای اتمام حجت یا انداب که آن که آنچه به شما بعدت آدمی می شود با بکوی پیند در و ای گام که ستارگان محبثوی کردند و ازوری که آسمان چ شود؟ و ایزا الجبال نسیبت و اتران زمان که کوه ها از جا کنده شبند و ایزا روس رو اکیبت و هنگام که برای پیامبران تعیین وقت شود لی یوم اجیلت این هم برای چه روزی به تأخیر افتاده برای روز جدایی تو ادراك ما يوم دانی روز جدایی کی وایل یوم اید للمکذبین روز بر تکذیب کنندگان الم آجا ما اجما اقوام نخفتین راه را نکردین سپس آخرین را به با آنها میفرستیم و كذ ك صع الملیین آی اینگونه با مجرمان رفتار میکنیم ویی للموکذین در آن رو بر تکسیب کن فَلَمْ نَخْلُفْكُمْ مِن مَا اِن آیا شما را از آب پست نو و نوچیز نیا سریدین؟ فَجَعَلْنَاهُ قرار قَرَارٍ سپس آن را در قرارگاه که و آماده قرار دادین الى قدر معلوم تا مدت معین فنعم الْقَادِرُونَ ما قدرت بر این کار داشتیم، پس ما قدرت خوبی هستیم. وَیْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَای در امروز بر تقصیب کن انتقان أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَا آیا زمین را مرکز اجتماعی انسان ها قرار ندادیم احیاء و هم در حال حیاتشان و هم مرگشان و جعلنا بیها رواتی شایخات و ما با دران فوحاوی اصطوار و پلان قرار دادیم و آب کبارا و شما نشانیدیم ویلن یوم اذن للمکذبین باید دران روز بر تقسی کنندگان انطلقون الى ما کنتم بینی تکذبون به ترنگ بروید بسوی همان چیزه که پیوسته آن را انکار می‌کردید ان طالق اله ذل ذی ثلاثه شعب بسوی سایه استشاخره لا عضلمن ولا يظلم من لهب فجيکن ارام بخشا از چو د هاوگی اوتش جلوتری میکند انها ترنی بشرر کلقف چرا از خود پرتاب میکند مانند یک کاغ گویی همچون صف دوی رنگی هستند و این یوم ایزی در آن روز بر تکسی کنند هذا کن. هاید یوم لا یمطکون امروز روزی که سخن نمی گویم و لا لهم اجازه داده نمی که آز خواهی کنند و او ای مکزیبی وای در روز بر تسیب کن انتکان خ تا امروز همد روز جدا که شما و پیشین یان را در آن جمع کرت اگر حفت با شما ن پس در برابر من انجام دهید ویلون یوم اید للمکذبین درم رو بر تکسیب کنند کانیم این المتقین ظلال و غرون مسلده افراد با سقوا در ساویه های و در میان چشمه ها قرار دارند و ثوات همی ما یشتهون و از آن چی موجر باشند قلو و اشربو هلی انبی ما کنتم تعملون بخورید و بنوشید گبارا اینها در برابر اعمالی که انجام میتافید این نا که دلک نجی المحسنین مصلماً ما انتونانی کرند را جزامیتی ویل وی یومای ذل المکذبین واژ درند روز بر تکسیب کنند تکان قل و تمتع قلیلاً این مجرمون بخرید و بحبه گیرید در این مدت کم چرا که شما مجرمید و این یوم ایلی للمکذبین ای روز بر تقسیب کنندگان و اذا قیل له لا هنگامی که با گفته شود رکو کنید رکو نمی کنند ویلون یوم ایذی لیل مکذبین بای روز بر تکثیب کنند کن فبی این حدیث بعدهو یؤمنون پس به سخن بعض از آن ایمان میابرند بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خدابنده بخشنده یه محبانه